هجده عادت آدت تنبلی. به خودتان جایزه بدهید. بحانه که از میان می رود. حالش را ندارم. از لحاظ تئوری شما می توانید فعالیت های خوبتان را با نظامی برای پاداش دادن به خودتان تقویت کنید و با تنبیه خودتان خیشتن را از انجام فعالیت های بد باز دارید. اما همکنون ثابت شده است که تنبیه در درازمدت استراتژی موثری برای انگیزه دادن و یا سلب انگیزه از فرد نیست. اما به هر حال شما می توانید با طراحی یک نظام کوچک برای پاداش به خودتان بر بی‌انگیزگیتان برای انجام کارها غلبه کنید. اول از همه لازم است که شما برای خودتان در طول روز جایزه هایی در نظر بگیرید. بدین ترتیب که کارهایی که از انجام آنها لذت میبرید از قبیل کتاب سر سرزدن به صفحات اجتماعی و یا صحبت با دوستانتان را هر وقت دوست داشتید انجام ندهید بلکه آنها را پاداش اتمام کارهایی که از آنها خوشتان نمی آید قرار دهید. کار بعدی ساختن جایزه هایی بزرگتر برای رسیدن به اهداف اصلیتان است. به اهداف دال سین دال میمزه نگاهی بیاندازید و به خودتان قول بدهید که برای رسیدن به هر یک از آنها به خودتان پاداشی متناسب بدهید. نکته مهم این است که مطمئن شوید جایزه‌ای که برای خودتان در نظر می گیرید با هدفی که به دنبالش هستید تداخل و تعارض نداشته باشد. برای مثال فرض کنید هدف شما آن است که تا روز اول ژانویه 5 کیلوگرم وزن کم کنید. پاداش مناسب آن است که وقتی به این هدف رسیدید با همسرتان به تعطیلاتی مفرح بروید. و پاداش نامناسب هم رفتن به یک رستوران و خوردن قضاهای است که دوباره شما را چاق می کند. اجرای این عادت سعی کنید با در نظر گرفتن پاداش های مفرح برای خودتان اوقات خوشی را فراهم کنید. نظام پاداش برای این است که آدتهایی که به صورت طبیعی شما را از مسیرتان منحرف می کند را در جهت انگیزه بخشیدن به خودتان به کار گیرید. برای انجام این کار بدین ترتیب عمل کنید یک. فهرستی از کارهایی که روزانه از انجامشان لذت میبرید را تهیه کنید. کتاب و مجله خواندن ورزش کردن رسانه های جمعی یا تماس تلفنی با دوستان و آشنایان 2. از یک نظام زمانبندی مانند تکنیک پومودورو برای 25 دقیقه کار کردن استفاده کنید. سه در برابر وسوسه انجام هر کاری به غیر از آن فعالیت خاص در این مدت زمان مقاومت کنید. چهار با انجام یک فعالیت کوچک مفرح در یک زنگ تفریح 5 دقیقه‌ای به خودتان جایزه بدهید. 5. ساعت را برای این پنج دقیقه کوک کنید و به محض تمام شدن آن به کارتان بازگردید. شش به همین ترتیب، در طول روز به انجام فعالیتهایتان ادامه دهید و پس از هر موفقیت کوچک به خودتان جایزه بدهید. در نگاه اول ممکن است خودتان را مثل یک موش آزمایشگاهی ببینید که به خاطر انجام کارهایی که از او خواسته می شود، تک پنیری جایزه می گیرد. اما در حقیقت بنا کردن یک روش پاداشدهی نظامند به شما کمک میکند تا راندمان کاری خود را در هر کاری به حد اکثر برسانید و بر بی‌انگیزی برای آغاز کارهایتان هم غلبه کنید. وقتی بدانید تنها 25 دقیقه تا انجام کاری مفرح زمان باقی مانده است، خود به خود در شما حس برای انجام هرچه زودتر فعالیت هایتان برانگیخته میشود.